تیریز تا سوز قریب مهاجم پاسست کرده است و اکنون یال بلند یابوی تنها که در خلنگزار تیره به فریاد مرغی تنها گوش می جز از نصیم مهربان ولایت آشفته نمی شود. من این را میدانم برادران من این را میبینم، بینم هر چند میان من و خلنگزاران خاموش اکنون بناهای آسمانسای است و درهای غریب که گیاه و پرنده در آن رویش و پرواز حسرت است. بر ما سرودی بلند میگذرد با دنباله تنینش برادران من اینجا پاس کردم که همین را بگویم اگر چند دور از آن جایی که می باید باشم زندانی سرکش جان خیشم و بی من آفتاب بر شالیزاران دره زیراب قریب و دلشکسته می گذرت. بر آسمان سرودی بلند می با دنباله تنینش برادران من اینجا مندم از اصل خود به دور که همین را بگویم و بدین دین رسالت دیریز تا مرگ را فریفتم بر آسمان سرودی بلند میگذرد.